آنان که محیط فضل و آداب شدند از جمع کمال شمع اصحاب شدند لحظین شب تاریک نبردند برون، گفتند گفتند و در خواب شدند هر صبح که روی لال شبنم گیرد بالای بنفشه در چمن خمگیرد، گیرد انصاف براز قنچه خوش میآید گرد امن خیشتن فراهم گیرد گردون ز سحاب نسترن می ریزد. گویی که شکوفه در چمن می ریزد، در جام چسوسن می گلگون ریزم که از عبر گون سمن می ریزد. پیرانه سرم عشق تو در دام کشید، ور نز کجا دست منو جام نبید، آن توبه که عقل داد جانان بشکست، وان جامه که سبر دوخت ایام درید.